بسم الله الرحمن الرحیم اللهم الله, الله على محمد و, على محمد و, على محمد و على الله محمد أفضل من شلّى دعاء لیبراهیم و لیبراهیم نک حمید و مجید عزیز فرا جمله نادوهم خو سبحانک ایم مبدو تعلیت و معيد اجنه من یا مجید و آنچه میفهمد در مدتی در مدتی دوار. دعا حدیث از امام من حضور صلی الله و تو دوست مجمیع آیه اینطور اصلا آیاتی که برای این از حال اون که بررسی کردیم دیدیم بیشتر فقط این آیاتن که هم آیات سبحانی هم هم آیات تعالیتی تا الان ما می رفتیم هم آیات سبحانی بودن و تعالیتی بودن یکی جدا بود یکی سبحانی و تعالیتی این هم سبحانی دارده چرا؟ چون نمی حلقه رو به هم بزنیم مخواد بگیم حلقه حلقه که سرداش میمونه. بعد میگه که خوب این ضعف ببین میگه جا الحق و یبدو لباته ما یوید میگه اگر حلقه الله یبدو یوید الله ابتدا از خدا خدا بعد ابتدا شروع کننده خدا در خلق ایجاد کننده خلق ابتدای خلق با خداست بعد نمیگه انتهای خلق با خداست میگه ارجای به خدا هم به خداست یعنی خلق انتها پیدا نمیکنه بلکه ارجا داده میشه دوباره به خدا خلق انتها پیدا نمیکنه بلکه ارجا داده میشود به خدای متعال یعنی از خودش شروع میکنه به خودش ختم میکنه میگی آقا کاری که داری میکنی تو از خودت شروع کن به خودت ختم کن اصلا نکنی نظام هستی اینطور قرار دادم کاری که شروع میکنی خودت حتما به خودت ختم میشه لذا تو باید کاری که دریم میکنی رو خودت مواظب بر کارهای خودت باشی، خودت پیگیری بیست چهار ساعتی کارهای خودت باشی، خودت لحظه به لحظه باشی باشید. چه کار انجام میدی، چه کاری انجام نمیدی. چرا؟ چون این کاری که تو شروع کنی، این کار به تو خاتم میشه. من سان نزام احتمالی تو قرار بودم. هر کار توی نزام احتمالی میشه به منزمن شروع میشه و من خاتم میشه. انتها پیدا میکنی من نمیتونم بگم این نوشته ای من الان این صدای من این رفتار من این حرکت من انتها پیدا کرد نقطه پایان زمان امروز رفت مثلا بر روز شمبه گذاشتیم شنبه دیگه نداریم دیگه اتفاقی نداریم نمیدی که زمان هستن دلیل برای انتها نیست چون انتهاش به خودته انتهاش به خداست به خدا بند میگرده دوباره بند میگرده به خدا. یه کاری که خودش شروع میکنی به خود دوباره برمیگرده. انتهاش به خود پس آقا میگه از من شروع میشه به خودم برمیگرده. پس تو میگی موازنه رو کار خودت چطور؟ میگی آخه منم هم همین دارم. من خدا هم همین کار کنه. بعد جالب اینجا سینی می‌خوام فرمود. خود حق ما یوبد ال باطل. ممید. چون من هستم حق میاد باطل برداشته میشه. یک دو این یک دو، این نو هوا یا به دوبام یا کی شروع میکنه؟ کی ارجاع میده خدا؟ اگه میهیچ حرف دیگه این نو هوا تمام شد، اصلا این نو هوا یا غیره یعنی غیره مند یک کسی وجود ندارد یک کسی وجود درم هم خداست هوا تنها خداست توانایی داره در این یب دو یید توان های دو دا داره بعد آیه سوم قول من شرک هاکن من یبد دور خخصون من یوید و قل الله یاب دور خصص ما یود و ف نه توفکن میگه اصلا ضعف انسان ها ضعف شرکای به شما می گیرید خدا شریک می یعنی که توانایی اینو ندارن که از یه تو خط کنن دوباره به خودشون برگرده الا من نمیگم توانای داشته باشم که دوباره به خدا برگردن اون که هیچی ضعف این آقایون شرکا اینه که شریک خدا اینه توانایی بر یوبد و یوید نداره یعنی چی من الان یک کاری دارم انجام میدم توانایینه ندارم بیست چهار ساعت اون بون کارم باشم چرا چون خواب میگیره منو ضعف میگیره، کشنده میشه، بیمار میشه، دردم میگیره. افسردگی میگیرم، حواسم پرت میشه، این اتفاقات معمولی ظاهری تازه. چقدر تمرکز کنم خسته میشم، نمیتونم، بدنم نمیکشه. میگه نه؟ من تمام وقت به چهار ساعته نمیتونم قرآن بخونم یه خود من ضبط بریم صدا ضبط میکنم قرآن هم جو سر میگه زبط هم خراب میشه باسیش تمام میشه مشکل برش پیش میاد قابل حرده بگه قابل خد شد قابل از بین رفتنه تایشه چی شو؟ میگه اصلا فرق بین من با شرکای من که دشمنان من بر من شریک میگیرن میگه پدرم با من شریک برای تو مادرم شریک تو زن و هم شریک خدا لا یز الله این بود این خونه این زمین و آسمون رو شدن چی بزن شریکن هوای نفس من خودم شریک خدا نی چطور میگه چرا چون حالا میگاسم نمیتونه شریک بشه چرا میگه دلیلی شده که نمیتونه ازجا شروع کنه میگه چه خطا کنه چطور نه اینکه که از یه جا شروع کنم به یه جا کنم بلکه بلی که نمیتونن از خودشون شروع کنم به خودشون ختم میکنن این یعنی این نیست که با من نیست که من این کار نکنم ما کده نمیدن از خون شروع که میخوان خط میکنم به این معنیه که تلاشتو بکن درستش همینه اما در واقع نمیتونیم انتفاق بیادیم من نمیتونم از خودم شروع کنم با خودم خواهد کنم تلاشم رو میکنم به درستش همینه مثلا روان هم پیش میره که من کاری رو انجام میدم مثلا یک کتابی رو رو من میخونم یک بحثی دارم میکنم یک کاری رو هم شروع میکنم یک غذایی داره پخته میشه یک آسمونی زمینی پنجره در باری میشه میگه این تو باز این پنجره رو باید خود رو دوباره این دو مخاطبش خودتی فیر نکنم از هم که هستی رفت به حقیه خوردن هر کنم کنی به خود رو بند میگرد کاری کن که به خود رو بند میگرد درست برگرده میگه یه فود داری میزنی یه هوایی داری بازدم میده بازدم میده بازن میده, بازدن میده. داری تورید میکنی این بازن میدونی نفس میده بیرون نفسی دوباره بندید با خودت چطور می‌دنم دم دیگه با خود بند میگه شوراکهای من نمیتونن اینو اداره کنن که به خودشون دوباره برگردن یا نگرده هم نمیتونن ادارش کنن که این دوره به خودشون برگرده هم نمیتونن ادارش کنن که به خودشون بر نگرده اتفاق روش که با من برخوردی میشه خب میگه از خودت به خودت تو کردی به خودت برگشت مثل که به من دوباره به من برگشت از من شروع شد به من دوباره برخورد شد من به من بر نگرده اصلا برگشت نکنه یا اگر برمی گرده درست برگرده با لبخند برگرده با خشروی برگرده با لذت برگرده با ترشروی برگشت یعنی من با ترشروی شروع کردم با ترشروی من خط شد. یا فهم من بود که بیام موازه به این باشم دهن موازه به رفتارون باشم موازه به کرداریم باشم موازه به باشم تا کجا به کی و چی ایراد بگیرم بگم و نکن بکن فلان کن یا الله چیکار کردم که چ الا میفته و یه بعدی میفرماید اولا یارب کیف ی الله خل ان نظله کا الله یسیر نه که مشک خودشون هوابتشون دیگران رو به و خودمونم قرار میدن نمیتونن خودشون شروع کنن به خودشونم خودشون خط میکنن لذا چون نمیتون این حلقه رو خوب انجام بدن از خودشون شروع میکنن به دیگران خط میکنن این کاری رو انجام میده میندازه گردن دیگری و چون نوان کارشون باطل و خراب و فساد و کسافت زشته همه رو در ایگه کارهای خودشون میکنن سخته براشون فرقش همینه الان یه بعدی همین میکنه اولا یارو اولا یارو کیف یبدو الله و الخلق ثم یعیدهو ان فرض خدا با انسان و با مشکان با شرکای که آدم مشتگاه رو میگیدن مثل خودش فرض خدا با برگه اینه که خدا از خودش شروع میکنه و به خودش ختم میده و این براش آسونه این کار هیچ کار مشکلی وجود نداره و آسانی اتفاق میفته از خونه شروع کنه به همون خونه دوباره برمیگرده حالا خدا آسونه اما غیر خدا این کار نمیتونه بکنه از خونه خودش شروع کنه به خونه خودش ختم نمی نمیتونه, نمیتونه. براش مشکله عصق دردسر، سخت براش تحملشو نداره تواناییشو نداره توانای درکشو نداره تو به توانایی عملیش نمیفهمه که اصلا چجوری توانی فکری حالا توانی فکری نده نمی فهمه چجوری از کجا به کجا باید تمام می شونه. مشکل توی مشکل منم مشکل اونه مشکل خودمونی چ باید رو گردن کسی که می غیر خدا اینو نمی فهمه میکنه میاد از خودش شروع میکنه کار خرابی رو انجام چون غیر خدای کنلا تو کار باطله، کار حق انجام نمی چون عیره خدایه کار نا انجام می کار باطل انجام نمی کار نا انجام می کار باطل انجام می کار کده حق انجام میده چون باطل به سن انجام نمی وقتی به سن انجام میگه تو مختصری، تو مختصری، تو مختصری غیر خدا توانایی فکری روحی جسمی جانی انجام یک کار از خودش شروع و به خودش ختم شود ندارد لذا همه را مقصر میدانهد و چون غیر خداست و محل کارهای باطل است و زشتی و پریدی و همراه دارد لذا لذا همیشه خرابی به بار میآورد و همه را غیر خودش موثر می داند. این مال غیر خوبشه هر وقتی کاری کردی خودتو بعد مقصر می دنبال اصطاع خودت بودی این یعنی این از غیر خودوی در درمی سمت حق بریم سمت حق بریم این الله خدا یاسره توی ماجره یسیره مویستر و آسونه برای خدا آسونه براش خصت یاسر بودن اینه با آسانی میتونه از این مسائلی بگذره و حرکت کنه دوباره با خودش برگذاره با حوالالی الله ها یبدر الله اللہ ها یبدر خر سمه یودود سمه الیه توجهان که آیه بحث کلی ماست بند میگه اونجا آیه قبلی میگفت کیفه یبدالله الله دو نظاره که اللہ هی است کیفه کیفیتشو بفهمید میگه چی؟ کیفه یا چی؟ یعنی بفهمید که ببینید آسانه برای شنه به چه کیفی میتونم انجام و چه کیفیتی میتونه انجام بده یا سرا به کمیّت نداره یا سرا ربط به کیفیت داره یا یاسر بودن وصل به کیفیت نکمیت وصل به کیفیت نکمیت اینم علی اصر یسرا اینم علی اصر یسرا همرو و اصر یسره این اسر به معنی تعداد نیست اصلا. اینجا معنی کیفیت که چجوری، چگانه، چگونه، چرایی، وجودی، چرا چگونه میتواند، به چه وجودی میتواند چرا میتواند به آسانی انجام بده؟ کیفیتش یعنی اینکه با چه کیفیتی تونسته از این خونه شروع کنه دوباره برگرده به خونه اول خودش در بودن رفت به کیفیت داره نه کمیت تعداد کار نداره چند تا خونه رد کرد بلیه به چی رفت داره؟ به این رفت داره که از کدوش شروع کرد چجوری میخواد به پایان برسونه؟ چجوری میخواد به پایان برسونه؟ به این چجوری به پایان برسونه رو اونه که خیر خدا نمیتونم بفهم چون علمش نداره شعورش نبانی فکری نداره نمیفهم از این باید بکنی. که چجوری به برس پایان برسونه چجوری باید از جایی شروع شود و همونجا درست و حق ختم شود این شجوری مهم، این شجوری این یعنی کیفیت. و هوا لذی يبدو الخصم يده و هوا اهزن علي. بله هول مساله علاوه فسمان و تو و لازم و حالا دیزل حکیم. برایش مساله علوی است در یعنی چی؟ مساله چی؟ در زمین. یا اینکه بی معنوس که. خدا مثل علایی در آسمان ها و زمین برای خلایق که فقط برای خدا یسره و احوانه هست آسونه سست جمع داره میشه دور کنه میتونه دور کنه و عزیز الحکیم و مثل و این خدا مثل علایی است برای همه خلایق که میتواند مبدو مویید باشد همه این آیات سبحانی و تعالیتی هستند با هم حالا جلوتر و بدتر میشه جالب تر میشه و بهتر میشه هشتم هفتم اما من یبددال ختون من هو و من یهزاق کن من هست و چه کسی شما ببین خلق رو میتونه شروع کنه چه کار میکنه تو یب دا خلق رو به وجود میاره خلق لاباتل اما من خلق بس من هو خب چیکار کنیم جلوی دوره این باطلا رو برداریم جلوی یوب دور باطل و یوی دو باطل درگیری گرفتار انسان‌های اهل جو باطل نشیم اولا خودمون توی کار باطل نریم سان یعنی اینکه از اینجور آدم را باید فاصله بگیریم ها. سوال بسن این که این بده باید خواهد محکم و قرص بوشه و این حیاهوهای باطلانه انسان ها افلت نکنیم، تکون نخویم، متزلزل نشیم حالا چطور میشه دستش کرده؟ نداریم به وجود بیاد چطور میشه دستش کرده؟ نداریم به وجود بیاد انتهال برای خودمون ما رو مقصده نکنه ما رو تو من خودش قرار ندار تو این زنجیر قرار نگیریم حواس جمعی میخواد هواس جمعی میخواد که دوی زنجیره حواس جمعی و دفت و دفت کامل میخواد که انسان در دو دور باطل انسانهای مشرک و یعید باطل میخواهند نرار نگیرد لا لا الله اما یبدار خفصم یعیده و من یعزاق گرم من از سماعی ولد ایه لا الله، الله قلحاتو برهان نکنیم کنتم شادقی برهان میخواد گرگ سادقید برهان این یبدو یویده رزق میاره حقه. یویده حق به یبدو یید حق یبدو یید حق رزق داره اون چیکار میکنه؟ رزقو و بر میداره رزق میآورد برای کی؟ برای خلق اما برای باطل که میشه حق رزق رزقو میخوره خلق میکشه. اما در دور باطن خلق کشته می شود رزق از بین می رود من رزقم هم اونجا. هم اونجایی که از جای حق شروع کنم به جای حق خط کنم. رزق هم اونجا. رزق هم تو دور باطل نیست میگه خدایا چرا من رزق نمیرسنی من میگه تو چه تو دور, بار دور باطل قرار گرفتی. تو تو زنجیره انسان‌های باطل قرار گرفتی. تو تو فضای کاری باطل قرار کردی رزق من اونجا نیست. رزق خدا در کجاست؟ رزق خدا در دور حق مبادر و موید حق کجا رزق نیست؟ هر جا که دور باطل است خیلی مهمه خیلی مهمه لا اله الا الله هشتم آخری الهیه مرجوع جميعا وعد الله حقا انهو یبدو الخلق ثم یده لیجزی الذين آمن و عمل الشالحات بل والذین كفروا لهم شراب من حمیم و عذاب من علیم به مکان یک فرون ولدین کفرو کیان ناشکران یا من الان یبدالخلو میکنم بعد بدیویدوی حق این دایره که وجود میار رزق و توشه و حقه من اصلا گذاشتم برای اینکه که لید بیال لدین آمانه و همه در من اصلا گذاشتم برای انسان های مومن اینجا همینو نبشتیم گفت من این زنجیره رو گذاشتم به زنجیره نیست دووره دوره که حلقه یا دو, یا دو پیش میاد حلقه هم نیست اینجا حلقه هم نیست زنجیره هم نیست بلکه دوره دور حق افر یا دا وجود بان که ایمان هم از سالم وجود داره میگه اصلا من از یه خونه ای حق شروع میکنم به یه خونه حق تمام میکنم به هم خونه حق تمام میکنم فقط برای اینکه که به مومنیم هم جواب قاس خواهد ماصفت داره باشه به اون مومنینی که به حرفای من گوش کردم به من توجه کردن درشونی من صفحاتم من برای اینکه که به اون جواب مثبت داده باشم اینا رو قبول کرده باشم با بگم که من با شما هستم این دو رو گذاشتم الله یویدو یویدو الله اصلا من رزق رو برای این گذاشتم این حلقه رو که الله شروع بشه دوباره به الله برگرده اگر الله یویدو یویدو بعد الله من اصلا گذاشتم برای این که به معاملین پاسخال مصبت مثبت گرفته در این دور دور مهم ری برای مؤمنین و غیره وجود دارد برای مؤمنین وجود دارد اصلا این زنجیره نه دور رو گذاشتم تا حق و خلق تولید شوند تا مؤمن من راحت باشه یعنی از خدا شروع میشه به خدا ختم میشه میفرم این شروع و خط فقط به خاطر گل روی مؤمنین است نه برعکس وجود مؤمنین باعث ایجاد این دور است همه گفتیم ها خدا میامره با خدا از خدا شروع میشه خدا خط میشه من مشکلین اینجا هیچ نقشی ندارن مشکلین دنبال و باطلن به خودشون خط نمیگنن همه را مقدسه نمیگنن رزق هست تو این جا نمیدونن کفیت رو برای خدا یسره برای خدا یسره هست برای خدا حوانه هست آسون آو مشکل اینا میگه تو چی؟ میگه یک نتیجه برات از بگیرم این که اصلا چرا گذاشتم این چرایی کیفیتش کیفیتش که آسان برای خدا میگه چرا برای اینو گذاشتم فقط برای این خلق دارم میکنم رزق دارم میدم فقط برای اینکه مومنمون باز خوب مصبت دادم شد که خانم مومن من نوکره، من جواب تو دارم میدم من قبولت کردم برای همین از من شروع میشه به خودم ختم من خودم مواظب به کارهای خودتم یعنی من خدا موازه به تو هستم خودم از اول تا آخر کارها رو بخودی تو فقط به حرف من قبول کن غزق میخوایید همینجاست خلق میخوایید همینجاست آسونی میخوایید همینجاست هبنه میخوایید همینجاست تو چیه؟ تو این دور از خدا شروع بشه از الله شروع بشه بعد دوره بعد از تو این ای هر جا ناسونی وجود داره سخی ازرو خیلی این غیر حوانه وجود داره خیلی این حجبیلی مقصری خیلی حجبیلی باطلی گرفتاری مومن خیر از دور حق قرار بگیری مقصر و گرفتاری بی رزقی بی خلقی و خدا ختمش کن خدا داره اونجا خب داره یه سر بعد هم میگه من اینا گوشم زمین برای امام حسین پارشم ری ازید ما من برای امام حسین آسمون زمین گذاشتم که ما فقط علیهم من من زمین گذاشتم برای امام حسین من و زمین گذاشتم برای علی و اکبر رو اصلا برای رو من آب نداشتم شب بخوایی اینجا چیتونی بونه گیم من آب گذاشتم برای حسین ابن علی علی یعنی عبید رو شما دارم اجمه این این اون بنده پاک که با هم تو کربلا هستم من بخورن عبادت رو بکنن من رو صدا بزنم مناجات کنن نگفتم من که بیانیم بخورن اون نامرده بخورن و آب رو داشت بردارن نمیذارم عليهم من السماء. إنو <تصفيق> يبدأ الخ ثم يدل يزل الذين هم وعمل الصلاة بالقسط بل كفروا له شراب من حميم وأذاب أليم بما كانوا يكفرن. یعنی اگر می‌بینید من آبر الان قرار دادم رو زمین طور قرار دادم من مجازات قرار دادم جهنم رو بهش قرار دادم یه کاری از من شروع کنی به من خط میشه اینو فقط رز همین جا خلق همین جاست یا یعنی ثنا و حونه همین جاست فقط برای اینکه بگم آ哟 ای من خانم من که به من حرف منو قبول کردیم، منو پذیرفتی به من این بغل کنار من پشتیدم من ورزیدم من هم حواظم به تو هست اصلا نمیذارم غیره غیره من به تو کار کنه تو چه باید بکنی؟ تو زحمت فکش فقط هر چی من میگم بچش چشم هر چی تو فهمیدی من به تو فهموندم اونی که من فهموندم تحریبت کردم عدبت کردم از پیام برم تو رو عدب کردم تو همون رویش رو بیا تو به حرف اینو اون کار پلوک پلوک میکنم یا با نه من آسانون در تو موازه به باش تو موازه رفتارت باش تو هر کاری رو انجام نده هر چی نگو هر درخواستی نکن هر رفتاری نکن تو تو دور باطل ها قرار نگیر تو تو حلقه های باطل قرار نگیر تو با انسان ها و کارهای های باطل ها، هم هم هنگ همه رنگ نشو من همون رسو دارم من همونجا هابنا براد میارم. من همونجا یه سرا و یه سر براد میارم. من همونجا به قیصه به جواب جوابتو میدم. یه دلالل همه امدره برامل و صلاحات به دقیق. و الهدین کفرو لهم شراب من همین و عذاب و نلیم به مکان یک به یک و اون چه که ناشکری کردن خب نکته مهمتر پیدا شد اصلا این دور باتل دور ناشکریه دور باطل دور ناشکریه است این باطل چیه؟ باطل ناشکریه هر جا دیدی ناشکریه بکش کنار مومن هر جا دیدی ناشکری هست خودت را بکش کنار چون دور باطله محصل میشی گرفتار میشی من رفتم فلان جا. گفتیم بریم فلان جا. احترام به بزرگتر. احترام به فلانی احترام به پدر پده در. فلان رفتیم سیم. حالا اتفاقات کواه حرفا خوب. من ناشخی کردم. من من ناشخی کنم. و شکنم خدا هزار هزار شکنم کنم از اینجه هست. الحمد والاقب. الحمد والاقب. اونی که در ناشکر این فضا رو میکنه تو دو دورش قرار نگیر من شکر وجودی نمی کنم شکر این جمع میکنم تا ما شکر بکنی جمع خودت خراب نه؟ جمع توی دور ناشکری قرار نگیر همین تمام شد. هر جا شکر است شکر هست قدردانی هست حرمت هست احترام هست همونجا قرار بگیر اون مقرده هم میکنم تفصف من به هر مهمون دعوت کنم من مهمان منم برام سفرهش غذا میارم چیکار منو یه تیکه نون هم شده میارم یه دو تا مثلا کباب گوشت هم شده میارم یه دو تا شیمی هم میارم چرا چه می‌دونم خود با من اجرا خودش منم میشم تمام شکر این شکرری شکری داره، تشکری داریم ما ده دوست سررا نشستیم غذا بخورم داشت پولم مقاه به جوستیم غذا بخوره که چی بشه این بی حرمتی. این حماقت این بیشرففی این بیاوروییه این فقر این فاقاقته از پر کن بیا اونم اومد تمامیم گذاشته تو خونه شصبح پنج کرد بده کار که ببت نیست که اودرت، خوهرت، مادرت، پدرت، دوستت، اشنات، همزایت، هرچی توان با. یه نداشتا هم نداشتا. یه تو هم باقید، طبق اخلاس نداشت، تو هم نداشت یا تو طبق اخلاس اون نمیداره، نمیفهمه، تو تو عذیت میشه از اینکه اون نمیدون، تو عذیت نمیشه، بلش مبارش نمیشه، مهمتر اینکه با هم هستیم. چهان نفر میشهستی این خرمت هم داریم بذاریم باشه این باید شکر میکنیم هر دو طرف هم. هر دو طرف هم. هر دو طرف, هر دو طرف تو چه شکر کنیم بگی خوب این فضاست اینجا نجا میدونیم خفلت نادرست خواب حالا بزرگتره یه چیزی گفت بلیس کنم و حرفی ندنیم حرف دیگه بحث دیگه ای با هم میموند می نیست در آمدیم تو تو اون <ISASES> حلقه یه شکری قرار بگیر هر جو بگیر. هر جا حلقه یه شکری کنه تو هم میتونی توش مردت تو هم هست تو دعوت کرم یه شکریم فلانی تو اون حلقه شکری قرار بگیر تو حلقه ناشکری نه. این باطل. باطله باطله چیه؟ گردن تو میگه نه رز به میرسه هم وقت بیچه میکنه میکنه و حرج برای به وجود میاره هم گرفتار میکنه هم رز میگیره هم آسونی راحتی از را بر میداره هم شراب حمیم و عذاب علیم برای داره هم مغصر میشی گرفتار میشه گرفت مثلا مغصر میشه یه تو هست. تو حلقه ناشکری قرار نگیری تمام شد هر جا حلقه ناشکری بود قرار نگیری بلکه جو حلقه شکر قرار بگیری تو کره شکر قرار بگیری یعنی کلا نه شکر و تشکر باشی قد باشی اونجا حلقه, حلقه حلقه درستی اونجا دور دور درست دور حقه الله یبدو و یعیده و علیه ترجمون اون مانه خدا هست، اونجا هست، اونجا رد توشه، اونجا اون یه سره توشه، اونجا خرمت توشه، اونجا بله جواب یه دلده این یا اونجا ساله بله اونجا تمام شد، اوج. سبحانه که یا مرد و یا محید و عجر نامنه، ناره یا مجیر چطور عجر یا مجیر پیش میاد؟ به شرط اینکه که دو دور باطل قرار نگیره نار چیه؟ نار این دور باطل است. یا مجیر پناه هم بده که تو دور باطل قرار تو دور ناشکری تو با انسانه ناشکر نشست ورقاست نکنم حال ناشکر نداشته باشم نه خودم اهل ناشکری باشم نه دیگرانی که ناشکرم با نشسته میشست كله والسلام الله أجمعين الله ومشاء الله على محمد وعلى محمد مشاء الله تعالى وعلى الله وعلى ابن الله وعلى ابن